خب در حقیقت توی این آیه که مطرح شد همونگونه که خدمت شما بیان, بیان داشتیم ما دو جنبه خوف و رجا رو مشاهده می کنیم خب قائلان به عدم خلود نکته که میگن گن همین بحثی که به شما گفتم دیگه اینه که آقا اینجا بر مقفرت خداوند تحکید شده است اینه که ببینید ما آن چیزی که باید لحاظ کنیم اینه که مخاطب آیی مؤمنان گناهکار هستن یا نه یا تمام مرتکبان کبایر هستن اگر مرتکب کبیره محکوم به خلود تو آتش باشه هرگز نمیتونیم ما در مورد اونها امید مغفرت داشته باشیم ببینید اگر اینها خالد در جهنم باشن طبیعتا کافر هستن دیگه یعنی میشن مرتکبان کافر اما مرتکبان کبائر که مؤمن هستند اونا بر سر دراهی قرار میگیرن اونجا مشیت الهی است ببینید ما نباید سریعاً اینجا حکم کنیم که خداوند مؤمنان خطا کار را در واقع سری میامرزد یعنی شما باید هر دو جنبه رو لحاظ کنید یعنی بگید خداوند شاید ببخشه شاید نبخشه چرا چون اگر ما به فرض میگم برای شخص کافر بگیم آقا خدا میبخشه دیگه این هر کفر را هر شرکی را بخواد مرتکب بشه خب طبیعتا موجب تجری میشود ما به او مجوز کفر را داده ایم و این الله خلاف در واقع منظومه های روایی و قرآنی ما هست دیگه طبیعتا با عقل مغایر مقایر هست پس ما دقت کنیم امید مغفرت نشانه چی چیست؟ نشونه اینه که شخص میخواد چیکار کار کنه؟ شخص توبه کنه. پس نشون میده این مومن گناهکاری هست که امید به توبهش هست. اینجا اگر شما مشاهده میکنیم این پس از این آیه افراد گناهکار نباید سوء استفاده کنن. این که میگه علا ظلم هم طبیعتا هر ظلمی اینجا مطرح نیست. این ربک لزوم مغفرتن لناس علا ظلم هم هر ظلمی نیست. شخص بیا قتل نفس کند، نوزو بالله بیاید، عمل نامشروی مرتکب بشود و موارد را شما همینجور لحاظ کنید طبیعتاً این نمی شود یعنی هر،, هر گونه هنجار شکنی مراد نیست اینجا و همین خاطر اینا میگن که استدلال نکرد که علا هم جمله حالیه هست یعنی خدا نسبت به مردم حتی در اون حالتی که راه ظلم و ستم را میپیماین دارای مغفرته حبیثا اینجا منظور کیا هستن افراد خدمت شما عرض شوبت که تائب ظالم هستن یا تائب ظالم نیستند ایشون میگه که و به طور مسلم آیه ناظر به گروه غیر تائب است زیرا گروه تائب ظالم اونا دیگه چیکار میکنن اونا دیگه توبه کردن دیگه علی ظلم هم نمیشود دیگه این موارد رو یعنی شما در نظر بگیرید مؤمنه گناهکاری که بدون توبه از دنیا رفته است مشمول این آیه می شود طبیعتاً اینجا شخص کافر مراد نیست ببینید ما ایشون تو پاسخ مصطبی را که مطرح میکنن همون که گفتیم اولا با ما درباره افراد مرتکب کبائر نمیتونیم سخن بگیم آن چیزی که ما میتونیم بگیم گفتیم که بحث زمینه هست اینجا ما این آیه را نمیتونیم دلیل بگیریم یعنی آیه بگیریم دلیل بگیریم که آه خداوند اه، مؤمنان گناهکار رو که توبه نکردن رو چکار میکنه اینها رو حتما از جهنم نجات بیدهد ما بنوان یک زمینه میتونیم لحاظ کنیم یعنی شما میتونین آیه رو زمینه و اصل و قاعده بگیرید نه دلیل یه نکته مثلا شما فرض بگیرید ایشون میگه میگه آقا ما آیاتی داریم چون که برخی مدعیان که قتل مؤمن مایه خلود در دوزخ است هرگز با این آیه منافاتی نخواهد داشت بلکه آیه دوم گویا برین این خواهد بود که این قسم از گناهان مایه تجلی قهر الهی خواهد بود نه تجلی رحمت او ببینید شما این آیه آن چیزی که وجود دارد دو بخشش رو نواد فراموش کنید ان ربک لزو مغفرته للناس بخش زو مغفرت بودن خداوند و از اونورم هم این نربکل شدید و یعنی شما هم باید جنبه قهاریت خداوند رو لحاظ کنید و هم از اونور جنبه جمال حق تعالی رو لحاظ کنید جنبه تجلی رحمت را لحاظ کنید خب حالا اگر شخص با توجه به ارتکاب کبائری که داره من نان علماء ما هیچ موقع نایمدن چست کنند نایمدن بگن آقا به اینه به فرض میگم دروغ یا مثلا فلان چیست فلان گناهی که ما انجام میدیم دروغ یا تهمت درسته؟ اینه که الان نمیان بله قبول داریم تهمت بدتر از دروغ هستا اینا شکی در این نیست اما اینجا نمیان بگن آقا هر کس که دروغ, دروغ گفت این سریعا نجات پیدا میکنه هیچ موقع نمیمدن این مرزها رو مشخص کنن چون این موجب تجری خواهد شد ما اونگاه مجووز میدیم که افراد گناه کنن دیگه پس این نکته هم همین شکل این آیه را ما چون دو جمهش رو باید لحاظ کنیم و بگیم که خطابش مؤمنان گناهکار هست نه کافران از اون باید دقت کنیم دو جنبه رو در آیه لحاظ کنیم علا زول هم رو شما اینجا لحاظ کنید بس علا ظلمه هم بر ما کمک میکنه هم جنبه مغفرت و هم جمه شدید شدیدالعقاب بودن حق تعالی و با قاطعیت ما نمیتونیم سخن بگیم. آیه خدمت شما عرض شبعت که مشهور دیگه که ما داریم که توی سوره نساب کار رفته است ان الله لا یغفرو ان یشرکه به و یغفرو ما دون ذالک لمن یشاء. دقت کنید این همنشین ها هم اینجا مهمه. بس مشیت اینجا بسیار مهم هست. که در واقع خداوند هرگز گناه شرک را نمیامرزه درست روست لایخ فرانی حالا گناهان غیر از اون رو برای ه... به هر کس دو... ما دون ازالک رو و هر کس بخواد چیه میبخشه ببینید این آیه رو خدمت شما عرشبت این آیه رو بیشتر استناد میکنن خدمت شما عرشبت که ما این آیه رو وقتی نگاه میکنیم مشاهده کنیم که خداوند آمرزش همه گناهان به جز شرک را در این آیه گزارش کرده دیگه ببینید این بحثی که وجود دارد مطلبی که قائلان به عدم خلود استناد میکنن اینه که آقا اینجا بحث چی هست؟ بحث طبیعتا اینه که انسان اگر مشرک نبود دیگه فرض بگیرید شخص مؤمن گناهکاری از دنیا رفت و بدون توبه در واقع مرگش فرا رسید اینجا در واقع خداوند رحمتش را شامل اون شخص میکند. طبیعتا افرادی که گناهکار باشن و توبه کنن از خدمت شما ارزش از مورد آیه میگه خارج میشن. چون در واقع توبه خدمت شما ارزش شود که موجب میشه که خودش گناهان رو میامرزد دی خداوند. این از اون خارج می شود یعنی شما صد را ذیل رو دقت کنید حالا بس یغفر و ما دون ذالک مطرح می شود ببینید ایشون میگه که از این که آیه میان مشرک و غیر آن تفصیل می دهد ببینید میگه لا یغفر ان یشرک تفصیل یعنی میانه است دیگه بین این و بین اون درسه و یغفر ما دون ذالک غیر اون رو تفصیل میده دیگه یه جدایی بین اینا مینازا دیگه باید بگیم که صدر و زیل آیه مربوط به کسانی هست که بدون توبه از جهان بروند. پس طبیعتاً اینگونه نمی شود دیگه قهرن نتیجه میشه که اگر چنین انسانی مشرک باشد بخشوده نمی شود ولی غیر مشرک در واقع نوید مغفرت در او هست. اما نه به طور قطع قطعی ها. که ایشون میگه که و سرانجام آیه گوه برینه که مرتکب کبیره مخلد در آتش نیست طبیعتا مرتکب کبیره که غیر مشرک باشد دیگه زیرا اگر به طور قطعی مخلد بود وعده آمرزش ولو به طور غیر منجز در واقع صحیح نیست ببینید وقتی در اینجا مطرح می شود ان الله این یغفرای یشرک مفهوم مخالفش چی می شود ان الله یخف رو افرادی که چی است مشرک نیستند دیگه اینجا شما وقتی نگاه می کنید یغفر رو انلای و شک مطرح میشه دیگه یعنی شما افرادی که مفهوم مخالف دیگه پس خداون افرادی که پایینتر از اون بوده بخشها دوم آیه اشاره کرده دیگه یخفر مادون زالک اینها رو میبخشه ببینید ایشون باز مطرح میکنه میگه بازم اینجا هست ما اینجا در مواد زمینه و امکان مقفرت میتونیم از اینهای استفاده کنیم نقطعی بودن اون یعنی ما بازم من بهتون میگم گناهان رو ما نمی توانیم بگیم خدا کدوم گناه را میبخشد کدام کدوم را نمیبخشد و اگر خداوند می اومد وعده قطعی و سریح میداد چی می شود؟ طبیعتا ما انسان ها ویژگی که داریم می فسق و فجور کنیم دیگه نوزو بله شما آیه پنجم سوره قیامت دیگه شاهده دیگه بل یورید الانسانو لیف جر امامهو آقا ویژگی انسان چیه؟ داره در مورد بحث منکران معاد میگه ها میگه انسان میخواد آینه عمرش رو به فسق و گناه در واقع بگذراند به همین خاطر که میاد پشت گوش میندازه و قیامت رو نمیخواد بپذیره با اینکه میدونه قیامتی هم هست بحث فوجوری که مطرح ببینید این نفس مارعه در واقع ما رو چیکار میکنه رهنمون میکنه به سمت بدی ها دیگه حالا اگر ما یه مجووزی هم بدیم بهش که بگیم ما خدا همه رو میبخشد خب طبیعتا این دیگه مجوز دادیم افراد میدارن گناه میکنن دیگه در حالی که آیات و روایات ما اولا بحث, بحث باب اف و هستا باب اف هست منطقه اف و رحمت حق تعالی. زیل خوف و رجا میاد یعنی میخواد یه بحث تربیت سازی هم اینجا باشد که افراد نه ناامید باشن از درگاه رحمت اقتال از اون حرکت کنن به سمت توبه جبران خطاها پس به خاطر ما میگیم اینجا زمینه و امکانه نه قطعی بودن و دلیل ایشون میگه که نتیجه گیری که میشود آیاتی که در باب خلود مطرح شد این نوع آیات را ما از زمینه مغفرت میگیم نمیتونیم عدم خلود را از اینها نتیجه بگیریم به همه خاطریشون میگه ناگفته پیداست این آیات را نمیتوان بر مغفرت قطعی و بدون چون و چرا حمل کرد زیرا نتیجان دعوت گناهکار به ادامه گناه هست و طبعا مورد بس با توبه فرق روشنی دارد ببینید اگر ما اینجوری بگیم انگار دعوت کردیم اشخاص را به گناهکاری و تائب در واقع شخصی که گناهکار است در صورت نوید مغفرت داده میشه که در خود ایجاد تحول کند و با تحول روحی این نوع نویدها غرور غرورآور نیست در حالی که این آیات ناظر به گناهکارانی است که هنوز توبه نکردند و بر گناه خود باقی ماندند بنابراین باید مغفرت های وارد در این آیات را یک نوع گزارش از زمینه مغفرت و امید به آن تفسیر کرد ببینید نتیجه اینها زمینه و امید کیشون گفت دیگه شخصی که توبه میکنه و اینا در صورتی بهش نویده مغفرت میدن که خودش تحولی را ایجاد کنه این دو در واقع اینها هم غرورآور نیست این نوویده چون شخص گناهکاره دیگه به هیچ وجه نویدآور نیست خب حالا جدا از اینها ببینید مثلا من توصیه میکنم حتما ببینید ما بحث مناجات و تائبین رو داریم مناجات و شاکین رو داریم چرا عیمه دست میزنن رو اینها یا دعای ابو حمزه که اینقدر سفارش شده ما بخوانیم. این همه اقرار به گناه و توبه و اینها موارد رو میبینیم طبیعتاً ائمه گناهشون اه اه گناه که نکردن که بس توجه هست دیگه اونها دفعی هست استغفارشون. گناه که نکردن رفعی که نیست که برای ماها رفه خدمت شما عرض شود که جدا از این موارد ما بس استدلال به روایات رو هم داریم یعنی همین افراد که میخوان خدمت شما عرض شود که عدم خلود رو نتیجه بگیرن به روایات نیز استناد میکنن البته عدم خلود مؤمنان گناهکار منظورمون هست دیگه یعنی افرادی که موفق به توبه نشدن از دنیا رفتن ببینید چند تا نمونه از روایات اینجا بد نیست ما ببینیم روایتی که از امام موسای کازم نقل شده که ابن نبی عمر میگه که از امام موسا کازم شنیدم که فرمود خداوند کسی را در آتش به طور جوافدانی نگه نمیدارد مگر اینکه کافر و منکر حق و گمراه و مشرک باشد ببینید امام قید زده ها استثنات چه کسانی هستن؟ کافران و منکران حق و گمراه، گمراهان و اینان اینا, اینا چ جاودانه در آتش میمانند اما بقیه افراد چی هست جاودانه نمیمونند یا شما باز میبینید که از امام کازم علیه السلام باز نقل که فرمودن دوزخیان وارد آتش میشن و سپس به واسطه اف الهی از اون بیرون میایند طبیعتا اینجا با توجه با تشکیل خانوادی حدیث متوجه میشویم کدام دوزخیان مراد هست دو مؤمنان گناهکار که تو توفیق توبه نداشتن ببین توبه اون معنای واقعی یا نه توبه لغلغ زبانی طبیعتاً اگر کسی طائب باشد دیگه این دیگه در جریه گناهکاران نوشته نمی شود نه اینکه ما هر روز استخفار کنیم و چیه دوباره لحظهی بعد گناه کنیم طبیعتاً این لفظ تائب و توبه برای این اشخاص جاری نمی شود روایات شفاعت که دیگه خیلی سریع هست دیگه شما روایت سریح از نبی اکرم دارید که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت اومده انما دخرت و شفاعتی لاهل الكبائر من امتی اینی که در واقع پیامبر فرمود شفا... من شفاعت خودم رو برای مرتکبان گناهان کبیر از امت خودم ذخیره کردم این میگن این هست دیگه یعنی مشخصه که خدمت شما هرچه مراد مؤمنان گناهکاری است که حالا با گناه از دنیا رفتند. ایشون بحثی که مطرح میکنه میگه که هدف از تشریع شفاعت نجات مرتکبان کبیره هست. هدف از شفاعت هم در واقع آمرزش گناهان کبیره است نه درجه. آن هم در باره سالهان و پاکان. ببینید من بازم بهتون اینو میگم. یه چیزی که ما میبینیم موت از می‌کنند، اونها آیات و روایات شفاعت را برای چی می‌گیرند ناظر به سالهان و پاکان می‌گیرند. که اینجا ارتقاء درجه لحاظ می‌شود. خدمت شما عرض شود که در حالی که پیامبر سریحا فرمودند، این نمت دخرت و شفاعتی لحل کبار من امتی اهل کبار اومده دیگه شما سالهان و پاکان را میگید درست نیست البته من بازم بهتون میگم حالا اینجای طلاس میگه شفاعت فقط برای گناهکاران اگر شما بروید در روایات ما نگاه کنید شفاعت جدا از اف و بخشش گناهکاران برای ارتقاء رتبه سالهان هم هست ها. هر دوتا هست درست بیشتر برای است، خدمت شما عرض سبت که آمرزش گناهان کبیره به کار میره اما ما میبینیم که برای ترفیه درجه مؤمنان هم به کار میرود اتفاقا روایت هم داریم تو این زمینه یعنی ما اگر یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله رو میگیم همش یعنی ما نباید همش تو وادی این بوده باشیم که گناه کرده باشیم و بخوایم گناهان ما رو ببخشن یعنی شما میدید ارتقا مرتبه هم هست اینجا که ببینیم علمای بزرگ ما پاکان و سالهان هم در واقع طلب شفاعت می‌کردند. روایت دیگه ما تو این زمینه داریم آیه سی کم سوره مبارکه نسا که میفرماید انتجتن بو کبار ما تون هونه ان نکفر انکم سیعات کم ببینید اینجا این آیه به چیزی که مطرح است به گناهانی در واقع مربوط هست که جز با توب و شفاعت بخشوده نمیشه فرض اینه که شخص توبه نکرده اینجا در واقع چی میشود؟ اینجا یک شرایطی رو باید داشته باشد اون مؤمن گناهکار که در واقع در سایه شفاعت بخشوده بشه دیگه انتجتن بو کبا رما تون هونان نکفر انکوم سیعات کم در حقیقت آیه اشاره میکنه که اگر از کبیره ها گناهان کبائر اون که نهی می شدید اجتناب نه میشید در واقع اجتناب کنید ما گناهان چیه؟ نوکه فرنکوم سیعات تکم. اینجا سیعات به چیش رو داره؟ در واقع اشاره به گناهان سقیره داره ها اینو می گه ما می زدائیم از شما پاکش می کنیم و اونها رو در واقع می آمرزیم. و ادامه آیه اشاره میکنه و ندخل کم مت، متخلن کریما شما رو به جایگاه ارزمند یعنی بهشت و قرب خیش در واقع در میاریم ببینید اینجا این چیزی که وجود داره یعنی انتجتن بو کبائر ما تون هون یعنی شما فرض رو بگیرید بخش اول این هستی که یعنی اگر مؤمنی از کبائر در واقع که نه, شده، نه، که نه شده قرار بود اجتناب کنه اجتناب نکرد اجتناب نکرد یالا این از دنیا رفت اینجوری استفاده میکنن دیگه اینجا نیازمند شخص بدون توبه از دنیا رفته اینجا میگن مواردی هست که شفاعت شامل حالش میشود البته ببینید ما دقت کنیم شفاعت شرایطی را دارد حتما ما با بهش دقت کنیم شفاعت مایه بخشودگی تمام گناهان کبا... کبیره نیست به ویژه افرادی که پیوند معنویشون رو با شفی قد کردن شما در نظر بگیرید پیامبر و اولیا الهی شفی ما میشوند نزد خداوند شف در مقابل وتر دیگه میشود یعنی ما انگار تنهایی خودمان نمیتوانیم از پس کار خودمان ما واسطه ای را قرار میدهیم میشه جفت دیگه شف می شود جفت این شخص آبرومند و آبروداری را که در واقع نزدیک به خداوند هست دیگه شما آیات شفاعت رو برید نگاه کنید باید این ارتباط برقرار باشه دیگه این وسط طبیعتن افرادی که قتل نفسی را انجام دادن تارک و بودن دائم و سکر بودن خداینا کرده این افراد طبیعتا طبغ چیزی که ما داریم روایات فراوان داریم دیگه اینها مشمول شفاعت نمیشوند ما بدون شفاعت بدون ذابطه نیست ببینید شما همین روایاتی هم که اینجا مطرح شده مثل آیات میگیم آقا این روایات هم بحث زمینه هست اینجا بحث قاعده و زمینه سازی است شما نمیتونید از این روایات دلیل بگیرید یعنی ببینید ما به قاطعیت باز هم اشاره میکنم به قاطعیت و با صراحت نباید از آیات و روایات استفاده کنیم که چیه این آیات و روایات دلیل بر چی است دلیل بر بخشودگی در واقع مرتکبان کبائر از غیر مشرکان هست دیگه مؤمنان گناهکار هست ما قطعی نمیتونیم بگیم اما میگیم آقا اینجا آن چیزی که وجود داره اینجا های مغفرت گزارش شده عدم خلود رو به هیچ وجه نباید ما بگیم یعنی صراحت و عدم خلود نداره زمینه اومده منطقه آدم خلود نیست دلیل عقلی هم که مطرح می شود خیلی خلاصه من بهتون بگم دلیل عقلی که اینجا میاد اینه که آقا میگن که اگر خدا به شخص مومنه که مرتکب کبائر شده اون رو در واقع جاودانه در جهنم قرار بدهد همچنین کافری را هم که در واقع کبائر کرده و هر فس و فجوری انجام داده اونم در جهنم مخلد و جوافتان قرار بده اینا برابر شدن دیگه این با اصل عدل ناسازگار هست ببینید آن چیزی که در پاسخ میشه گفت اولا ما به هیچ وجه بحث اینا نمیگیم اینا یکسان به بلحاظ عقلی خودمونم میپذیریم بین کافر با مؤمن مرتکب کبیره اینا هیچ مشابهتی وجود ندارد شما نمیتونید شباهت بگیرید منظورم شب... شباهت بلحاظ سعادت و شقاوت ها ممکنه در این خلود از نظر کیفیت چیه؟ کیفیت عذاب با هم یکی نباشن بله اینا جافدان میمانن اما کیفیت عذابشون متفاوته ما که به لازه عقلی که آن چیزی نمیتونیم به لازه عقلی بگیم این محاله که یعنی میدید امکان دارد اینا در این خلود از نظر کیفیت عذاب با هم دیگه متفاوت باشن خب این بخش. دلایل قائلان و عدم خلود در جهنم رو ذکر کردیم حالا میرسیم سراغ دلایل قائلان به خلود در جهنم